اینکه دعایی که بعد از اینکه پرسه تضیت تمام میشه بعد هم دعاتتی میگیرن بعضی جاها گوسفندی میکشن روز آخر و بعضی جاها حلویت درست میکنن و بعضی جاها شربات و شیری میدن و بعضی جاها کارا دیگری میکنن و بعضی جاهابیگن که برید کل خونها رو جارو کنید ظرفها رو بشورید لحهافا رو بشورید که ازضا از خونه بره بیرون. همه اینها بدتم اینکه جنبش گوسفندی میکشند و دعوتی بدن روز آخر چیلونی شربت بدن، حلوا و خورما بدن، یا کسی رو بخ... بگن که بیا شخصی رو فرا بخورن که به اینجا برای من یا برای ما دعا بکن کورسه ما تمام شده، این بدعت هست، در شریعت ثبوتی نداره، از این کارها بپرهیزید همهشون گناه هستن، برای ما یه چیزی از اینها نمیرسه.